مارال مرال کارگردان مهدی سباقزاده نویسنده محمد حادی کریمی تهیه کننده محمد حاشم سبوکی موسیقی مرداد جنابی محصول سال 1379 بازیگران فرامرز صدیقی دیگه بیالی و بعد هم بیخیر شو و هیچ کاریش نمیشه کرد سریا قاسمی وقتی زلزله میشه همه اهالی دهشون میمیرن. اینو نامزدی زنده میمونند با چند تا بچه‌ی کوچیک. حدیث فولاد برد. می‌خوای پدری کنی؟" سایتون رو سرم گذاشته. "محتاج نجومی. خا، این دختر از ناحیه جسمی هیچ مشکلی نداره." تداری فیلم این بیت از حافظ شیرازی دیده میشه هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش آدم صفات از روزی رزوان به درائی دو تا ماهی قرمز توی یه حوز آبی رنگ بزرگ پر از آب که دورتادورش گلونه سبز رنگی چیده شده وسط یه حیات خونه بزرگ قدیمی دنبال همدیگه شنا میکنم یکی از پنجرهایی ساختمان بازه باد پرده سفید رنگی رو پیچ و تاب میده توی خونه فضا کاملا قدیمی و سنتیه تابلو قدیمی روی یه پیش بخاری دیده میشن تونک های سبز رنگ و یه کتاب خونه چوبی توی یه اتاق مرد محسنی با سراریش جاگندمی که روی لباسش عبای تو خونه پوشیده رو لبه تختی نشسته دست راستش تصویحه و دست چپش یک کتاب اون رفتی تو فکر آقا آقا توی یه اتاق دیگه خانم مسن چادر مشکیشو به سرش میکشی کیفشو برمیده میاد تو راه روی دم در ورودی ساختمون جلو آینه روسری و چادرش رو مرتب میکنه مرد به صدای زن توجه میکنی. از رو تخت بلند میشه زن از در ساختمون بیرون اومد از پله میاد پایین من رفتم ناشتایی گذاشتم تو آشپزخونه. کاری نداری؟ سلامت خیر پیش مرد پنجری اتاق که توقعی دوم ساختمونه باز میکنه. به زن نگاه میکنه. زن کنار حوز و میسته و برمیگرده طرف پنجره. مرد پنجره رو میبنده. عبار رو از رو دوشش بر میداره. کتابو کتاب رو میذاره رو و تصفیهش رو بر و تو دستش میچرخونه. سالن بزرگی مسجده که خانوم زیادی مشغول بستبندی شیشه های آب لیمون گوتی های کنسر های روغن و یک سری مواد قضایی هم چند تای دختر بچه هم کنار خانوم مشغول کارم خانم مسن اول فیلم با یک خانم میان سال مشغول شماردن پول و حساب کتاب هم سد خب چی ها جمع شده؟ به هزار از لباس کوهنه و نو ستای پتو سه تا بخاری برقی سه تام الادی کمه کمه به هیچ جا نمیرسه بیا خواه باش کنم نشه برسیم که سی اینا اینم باشه باشه باشه زن محسن بلند خانم موازه باش تاریخ مصرفش نگذشته باشه کمی زودتر بسته بندی بکنیم که به بتوانیم بفرستیم ببرم سال به سال امتر میشه چند سال پیش تو میسیم حساب سه این کمک کردن ای خدا ایمان نمید بیشتر کن احا پس این خانوم ها مشغول جمعوری کمک برای زلزل زده ها روی کوچه مسجد تلاکاردی دیده میشه که روش نوشته محل جمعاوری کمک های مردمی به زلزله زدگان. تعدادی زن با وسایل و مواد غذایی که دستشون گرفتن دارن طرف مسجد شب شد. زن موسیم برگشت خود چادر نمازش رو آنسو بکنه به چوب رخده. قبول حق بدم این چایی برش توی اتاق نشسته رو زمین و تکیه داده به پشتی و داره تلویزیون نگاه میکنه آه. یه ظرف هندونم با بشقاب و چنگال و یه سیمی با یه فنجون خالی کنار مرد هست من دارم میرم خونه ریحان این وقت شب؟ اگه جبانه 18 ساله کسی با من کار نداره باقیره. باقیره. باقیره. باقیره. تو رو نمیگم خوهر میگم که این وقت شب سرزده میری خونه کار خیر روز و شب نداره. از من میشنوپی نرو. مردم تو رو در وسی نداز. شاید نداشته باشم بدم شما چی کار کردی بازار؟ اولش خوب نبود. دم خوربی شیرین شد. علامت الله یه چهار پنج میلیونی جمع شد. حالا که میری زیاد با مردم چالچال نکن. زود برگرد که مثل اون هفته خواب نمونید چهل نفر آدمو بکشونی اینجا همه رو علاف کنید فردا نمیرم کهریزک فردارم برای زرزل زده ها کار میکنیم خیر زرزل زده ها به ما رسید فردارو خورده میتونیم بخوابیم انقدر زیر خاک بخوابیم که از خواب سیر بشیم همین کاراست که اون بر دستمونو میگیرم اون روز به دادم خب دیگه من میرم خودت بالا همش چیزی بخور زن مسی مادی خونه خواهرش یه خونی شیک و مدرن و مجربه خواهر زن شیک و خوش که روسری رنگی پوشیده با لباس سفید و رنگ روشن برخلاف زن که روسری مشکی پوشیده و لباساش تیره دختر زیبای جوانی به اون شربت تاروف نکنه دستو درد نکنه من نمیخورم بخارمت خونگی خودم درست کردم اصرار نکن خواهرم از درف و ظروف خونه ما مطمئن نیست بذار راحت باشم زیاد وقتتو نمیگیرم خبر زلزل رو کی شنیدی؟ اخ, آره به چرا خیلی ناراحت شدم این بلا باید تهرون میامد خب اولاً که زلزله بلا نیست. خدا مهربونتر از اینی که کفاره گناه آدم بزرگا رو چهار تا بچه‌ی خوره بده. اگه اینجوری هم باشه که تو میگی، یعنی خدا اشتباهی بلا رو فرستاده؟ یعنی به اندازه شما نمیدونسته که کجا بفرسته. ابراهیم گفت باد کل کل نکنم. کل کل چی داریم حرف میزنی چرا همیشه از شنیدن تفره میری چرا فقط میخوای خودت حرف بزنی بقیه‌ام فقط گوش بدم؟ پس زدن با شما ها فایده نداره یه کمکی می من پاشم برم یا نه همین صبحی پول ریختم به حسابشون پس فردا هم دارم میرم اونجا یه هفتم قراره بمونم باز هم کار دیگه ای هست که بکنم؟ هرکی هر چی میده تو باید ده برابر بدی برای کفاره اون مدتی که خارج بودی خدا از سر تصیلاته بگذره تو عزیز دوردونش پرسادی اگه دنیا که بشی خانم دکتر کترش صبر کن تو فکر میکنی من کی هستم؟ اگه امثال ما تو اون خاره جون نمیکندیم و جوونیمونه نمیذاشتیم الان صد تا امثال تو باید سر زار رفته باشید یا با یه خونریزی کوچیک تلف شده باشید حالا بینی و بین الله یه کمکی بکن قلم عف بکش روی نامه اعمالت به فرض هر گناهی هم خودم میدونم چطوری از خدای خودم معذرت بخوام مذارت خواهی نه استغفار حالا همون که تو میگی اونتها به روش خودم وظیفه من تذکر بود خود دانه. زن برگشت خونه با ابراهیم همسرش مشغول پیچیدن یه سری بشقاب و ظرف و ظروف لابلای روز نمارد خش می چند تا از این بچه های آباره رو می آوردیم بیاریم نگرشون داریم آره نگرشون داریم تو هم که همیشه صف دختر داشتی یکی دوتا می آوردیم بزرگشون می کردیم بیاریم چرا نشید حواست کجاست ای پسر بیاریم، واسه من نامهرمه اگه دختر بیاریم واسه تو نامهرمه او حالا چیکار میشه هیچ خوهرامونم که از شیر افتادن نمیتونیم بچی شیر خوره بدیم بگیم شیر بدن مهرممون بشه پس <تصفيق> نمیشه دیگه خیلی حیف شد وگرنه به بعضی نشون میدارم که هنوز هستن آدمایی که از شکمشون بزنن ولی بچه یتیم نگهدارن. من نمیدونم تو واسه خدا کار میکنی یا واسه مردم. واسه خدا واسه خدا ولی واسه این جماعت گاهی اوقات بعضی چیزا رو باید تو بوخ کرد تا از خواب قفلت بیدار شم. من دلم برای بچه خودم یه ذره شده. اون وقت تو میخوایی بری بچه مردم رو برداری بیاری تو این خونه من پسری به این اسم ندارم چرا گناهش چیه پسری که به زن سرلخت بگیره که جلوی مردم هر رو کره بکنه پسر من نیست سرلخت چرکر بخند قروسمو نمیتونم به دوست آشنا نشون بدم هر کی نخواد مثل تو بشه از این حرفا واسش در میاری تو رو خدا دوباره شروع نکن قندم میره بالاها نصف شبه زن رو زیر پتو دراز کشیده معلوم بیخواب شده داره تسبیح میگردونه کمی نور از پنجره تابیده رو صورتش بلند میشه میشینه تو دخت اومده دم در ورودی ساختمان. از پله ها میاد پایین میشینه رو آخرین پله روبروی هوز همین همینجوری تو دستشه رفته تو فکر به نظر میاد قمگینه صبح زود تو کوچه چادر به سر آزم میل به دست با دو نون سنگت داره میاد طرف خونه مرد داره توی حیات خونه میل میچرخونه رادیو روشنه زن داره حیاتو باز میکنه در از کنار حوض حرکت میکنه ما میلهای ورزشی رو میذاری یه گوشه و با لباس میپره تو گوش اخمومه لباسم رو باید آب بکشم آبی ایتیاد داشت بابایی بکن بخن <تصفيق> میخندم تو اون دنیا میخندم. وقتی اونایی که خیال میپنن خیلی بشه و شخندونن میرن تو آتیش جهنم نوبت خنده منم میرسه حالا چرا چشب اینجوری گاد افتاده؟ دیشب نخواهی از این نون خریدم معلومه از بیخوابی زدی کوچه ها <تصفيق> تا صبح همش را رفت. فکر میکردم فکر کاری که شاید اون دنیا دستم رو بگیره تا صبح را رفتم و سبک سنگین کردم بیا بیرون حالا سرما میخوری کار دست خودت میدی نه ترس عروض پیر نشدم از این جمعه های پوپکیه تو خیابون هنوز ببین حالا میتونی خودتو نظر بزنی یا نه بشاونیش داره از حوز میاد بیرون میره طرف زن ما باید این کارو بکنیم آقا وگر نمیگم بی خود میرم تو این جلسات و زنها رو نصیحت میکنم دیروز یه زنی درباره داستان سارا و ابراهیم صحبت میکرد من واقعا تعجب کردم سارا زن پیغمبر خدا به یه زن بی پشتفنا حسادت میکنه و اونو از خونهش میندازه بیرون دیروز یه دختر جوان ازم پرسید چرا میگی سارا حسود بود شاید عاشق ابراهیم بوده و نمیخواسته یه زن دیگه رو کنار شوهرش تحمل بکنه بهش گفتم نه دختر جون نه سارا ایمانش کم بود دختره برگشت گفت پس با این حساب هیچ زن با ایمانی تو دنیا پیدا نمیشه باید جواب همش رو ده. زن از پله ها میاد پایی <تصفيق> یه سبد که پر از نون سنگک تیکه شده سو میاره و میشینه رو تخت حیات که قوری و سماور و بسات سپونم روش هست میگم یادت گفتم چند از این بچه هایت مو بیاریم نگه داریم خودم گفتم نمیشه مرد لقمه می نون پنیر یه چیزی به نظرم اومد دیشب خیلی فکر کردم دم دمای صبح یه حصورت اون زنه به نظر آومد که همه کسانش زیر تل خاک مونده بودم یه چیزی میگم قبول کن بابا نصف جون کردی بگو آخه میترسم قبول نکنی میخوای بگی خونه رو بکنیم پرورشگاه نه نه بفروشیم بریم به فقیر بیشاره ها تو که نمیزنی من حرفمو بزنم یعنی از اینم بیشتر یه دقیقه دندون رو جیگر بذار میگم میگم یکی از این زنهای بی سرپه است که هیچ کس رو نداره میاریم پیش خودم خب که چی بشه با عقدش میکنیم ستایی با هم زندگی میکنیم زن با چشمی پر از انتظار و تردید به مرد خیره شده. اینجا بازار فرش فروشه. آقا ابراهیم تو مغازه‌ش. رحیمان خاطر جان از زمین لاکو نقش ترنجی رو برام بفروش. باش. خوبی عجی؟ الحمدلالله بستر منزل رو فرستاده بدم به شما بدی منظرتون نمیدونم جهیزی دخترهای فقیره خدا قبول کنه. سلام علیکم آره همین الان آبوردن حجی خانو من سلام برسونین توازه دعای مخصوص دارم سلام میرسونم باشه الان نه زنگ بزن خدا حافظ بابا من نمیتونم اینم هزار دفعه اینم کار خیر هست دور منو خط بکش خانم عزیز بی خود منو تو دهنان انداز نقل معافرا نکن من همین جوریشم زیر ذره بینم رو ابراهیم سر سفره مردم بی خود میکنم یه زن تنها آباره کوچه و خیابون بشه میونه این همه مردم بیدین و ایمان گرگ صفت خوبه؟ کی میاد یه لغمه نون بده بخوره؟ کی میاد یه سرپناه براش درست بکنه بر زیرش بخوابه؟ شرب بپا نکن مگه میخوای زن بگیری عشق و عاشقی را بندازی؟ یه زن بدبخت چی میخواد؟ یه لغم یه سرپنا یه اسم شوهر که بالا سرش باشه که نگاه ایز بقال و چقال ازش گرفته بشه همه اینا رو گفتی ولی من تو چتم نمیره چیه میترسی مردم فکر بکنن حاجی شلوارش دوتا شده فیرش شده هندستون کرده نترس چون میندازم که خودم براش گرفتم اون وقت میان خودت عیب و ایرادی داری وا بیخود خود میکنم الحمدلله نه کورم نه شل نه اوجا کور بس سرهای کلامم که خودت میدونی هیچ ارادی نداره اون ارادایی دیگم که از سن منو تو گذشته ابراهیم عثوانی قاشق چنگالشو میذاری تو و بلند میشه کجا میری طرف چوب رختی هر چی میگم با تو کل, کل نکنم نمیشه جوابمو ندادی منو مسخره مردم نکن اصلا مسیر حرف مردم شدی ده همین چیزاست که بی ایمانی میاری مردم از ترس دیگران از اینکه بهشون بخندن از کار خیر فراری شدند این همه آدم عذب تو این شهر ریخته تو واسه اونا دست بالا کنم چشمم ترسیده این جوونهایی که من میبینم انگار یه چیزیشون میشه ندیدی دختر و پسر ریخته بودن صدای سوت و هر که بوش موشه پلکو کر می‌چرد دانشجوش که اینه وای به حال دیگران واسه پسر خودم هم که رفع خواستم دست بالا کنم همچین سنگ روی یقه کرد که واسه هفت پشتم کافیه اصیتا نکن. بله رو بگو. بیا و منصرف شو. نمیتونم. دیگه نمیتونم بهش فکر نکنم به دو سه نفرم گفتم میترسن فکر کنم من پاپس کشیدم. استغفرالله الله. آدمم شما زنا از بهشت انداختین بیرون. آدم اگه ایمان داشت گول زنشو نمیخورد. این کارت بخوره به اون شکمی که واسه یه دونه گندم. آدم اینطور خودش رو خونه خراب کنه. باش من جای آدم بودم گندم که سبل مرغ برجونم بود لب نمیزدم کفر نگو زن تو به پیغمبر خدا چیکار داری اخرسم میگیره هرسم میگیره پس میگم فایقه بره چیو پیدا کنه بیاره یه سیغه دو سه روزم اگه من بکالت بهم بدی براش میخونیم که بیاد خونه محرم باشه بعدم میریم الله اکبر پای فایقه رو بسد نکش زن فائقه اینه چشم خودمه بعدم این مال همون دهیه که زلزله اومده اگه اینجور باشه میره بدبخترینش رو پیدا میکنه میاره خدایا به دادمون برست این زن دم مسجد محل جمعوری کمک ها فائقه چند تا خانوم یکی یکی سوار ماشین میکنه برو اونجا آه سب شما برو اون صندلی بشین آه اونجا این صندلینا، اون یکی. سارا خانوم، او گفتش که منی مرد از براش پیدا میکنم عقدشون میکنم، خودم خرجشون رو میدم. حالا که اون راضی شده، ببینم تو چه کار میخوای بر من بکنی. دیگه سفارش نمیکنم. خوشا خوش پشت و پناهت، این من خوش خوش سعادت به سعادتت. با این کارت آقاموت هر دو میخریدی. لواسه به خودت باش، دیگه سفارش نمیکنم. زن و فائقه با همدیگه رو روبوسی میکنن فائقه سوار اتوبوس میشه و درو میبنده زن تو خونه داره آینه رو تمیز میکنه توی حوض حیات داره حباب نام ها رو میشوره رو پله ها رو جارو میزنه درخت رو آب میده یه نارنج از درخت میفته یار حباب لامپ توی حیاتو میبنده لامپو روشن میکنه عوض نکردی واقعا باورت شده عروسی منه پرم لباسای دو مادیمو رو زن چادر نهازشو میکوشه و از پله ها میاد پایین میره طرف در حیات در رو باز میکنه پایقه است پس چی شد؟ آوردمش دلم یه محرمیت سه روز براش بخونن اونده خونه فرستادمیشم من دیگه برم وقتی آقا اومد کجا سره گذار پیش آقا دادا دلم بزنارم اشوت دیگه بلارو از همون گرفتی فکر نکن تموم شد دیگه و <تصفيق> امید خدا دستشو میذارم تو دستی آدم همین باستو برای شونت همین اینجوری هم تو امتحانتو پست دادی هم من <تصفيق> آقا ابراهیم میره و می در رو میبنده زن نگرانه رو الله ها میشینه شب شده آقا ابراهیم برگشت خونه دو تو کیسه پلاستیکی که پر از میوست دست بشه تو حیات بازنش دارم میان طرف ساختمان چه خبر؟ زن زنر آورد خیر انشالله بالاخره کار خود تو کردیم پس کجا؟ بیه زنر ببین نه خستم خو بردن آقا ابراهیم از اتاقش میاد بیرون زن تو آشباسخونه داره یه ظرف میوه آماده میکنه آقا آقا یه دقیه نمیان بایی؟ خیار گوجه سبس گیلارس این رو چیده توی ظرف زفت شیشه آقا ابراهیم عباب دوش رو تسبیح به دست از پله ها میاد پایین چقدر طول داد این آقا یه زن چادر مشکی به سر که صورتش رو حساب پوشونده جلو پای اونا بلند میشه یا الله. زن ظرف میوه و باشقابا رو میذاره جلو دستش سر سلام علیکم بفرمایید هم بفرمایید بفرماید هم شیره چیه بده سلامون آخرتون باشه هر چی که اوناست بقای اون به شما باشه خدا رحمتشون کنه بخور چایت سرد شد بخور آقا ابراهیم بلند میشه که بره خب من برم که شما راحت باشی. بشین آقا بشین من الان درستش میکنم این از منم رو میگیره الله. بابا محرمته یه خود رو تو باز کن اصلا چادرتو بده من آوزو بکنم بده من بده من بده من بذار راحت باشیم راحته راحته <تصفح> زن موسی چادر از اثر زن مهمون داره. زن جوان بیست بیس و یک ساله خیلی زیباست با وحشت به آقا ابراهیم نگاه میکنه آقا ابراهیمم با دقت به چهره زن توجه میکنه زن ابراهیم متوجه نگاه اونام میشه چهرش به هم میریزه به زن جوان زیبا نگاه میکنه زن آقا ابراهیم اومدی تو آشپزخونه. سینی که سه تا نیم خوردی دوق سه تا بشقاب که تهماندی شام توی اوناسو خالی میکنه داشتی؟ آقا ابراهیم ده. میاد طرف آشباز من میرم بخوابم. خوابم شما دوتا پایین میخوابین دیگه بله چزا مگه؟ هیچی فقط خواستم بگم پشت در رو بندازین. یه وقت گربه میاد تو ساختمون باشه پشت در رو می زن آقا ابراهیم چادر مشکی به سر تو کوچه داره با سرعت می اینجا خونه فائقه است که با دو تا دختر نوجوونش نشستن رو تختی که توی حیات کوچولوشونه. شونه اونا دارم سبزی پاک میکنن فائقه درو باز میکنه مگه نگفته. مگه نگفته بودم بگرد بدبخترینشو پیدا کن هر وارد نمیشه این همه بهت سفارش کرده بودم والا بیچاره است همه فک و فامیلش مردن قریبتر از این کسی رو پیدا نکردم یه نامزدم داشتش که قرار بود بیستامه ماه عقدش کنه که اونم تو جاده تصادف کرد و مرد یعنی عقد نشده بود فیسان ندادی قدش بلنده همش بیست سالشه عجب. مخصوصا اون انتخاب کردم عجب اومدم بگم من نمیام کرد سک خودتون بریم یشم وقتی باید تو خونه باشم فیسان آقا ابراهیم تو کوچه نون سنگک به دست داره به طرف خونه میره تو حیات زن آقای ابراهیم دستکش به دست مشغول شستش لباسه یه سری ملافه شده شدرم رو بند پند کرده آقا ابراهیم میره میشنه لبه تخته توی حیات یه سری لباسه رنگی زن جوان روی بند آویزونه نباشید نرفتی امروز از کمر افتادم مجبور شدم خودم لباسشو آب بکشم یه وقت نراد نشه؟ چیکار کار کنم تا خوب نشناسمش ندونم پاکی و نجسی حالیشه باید احتیاط کنم گناه داره خانم ناراحت میشه منظورم اینه که خب دلش شکسته است یه وقت به دل نگیره ناهار تازره گذاشتم رو گاز نهار. آره ما خوردیم دختره زن جوون با یه سبد پلاستیکی میره طرف زن آقا ابراهیم برو نونو بگیر بعد بزن. میره طرف خود آقا ابراهیم آقا ابراهیم روشو از زن جوون بر میگردونه که مرتکب گناه نشه زن جوون نونو میگیره و از پله ها میره بالا آقا ابراهیم یواشکی بهش نگاه میکنه زن آقا ابراهیم متوجه نگاه کردن بس شوهرش بس میشه اگه بگم نمیدونم باور نمی کنیم نپرسیدم گفتم بخوام صداش بزنم چی بگم همشیره که دیشب گفتی زشته نگم خانومم که بده بگو دخترم و خودتو خلاص کن دخترم؟ آره فقط همین میگم تیتی دختره چشما شبیه چشمای خودمه چشمای تو آقا ابراهیم از لبیه تخت بلند میشه زنش میره طرفش آره چشما شبیه جوونی توه زن نراحت میشه بغز میکنه آقا ابراهیم میره توی ساختمون در اتاق زن جوان بازی میبینه زن جوان نشسته رو لبه تخت و داره ساک رو مرتب میکنه آقا ابراهیم میره آقا ابراهیم تو مغازه فرش فروشیش بیقراره در مغازه رو میبنده کتش میپوشه و راه میفته که بره فرش فروش کناریش مرد محسنیه که با تعجب به رفتن آقا ابراهیم و ساعت نگاه میکنه که یعنی آقا ابراهیم داره زود میره ها زن محسن داره برنج پاک میکنه و زن جوونم داره با دست یه تیک پارچه رو دوردوزی میکنه فارسی بلدی؟ بله سوادم داری؟ بله همیشه هم اینقدر مظلومی؟ بله اینجا وصلت سر میره؟ بله میخوای ببرم اتونه همشریات بله آقا ابراهیم با کیسه های پراسیکی پر از میوه اومده خونه یالنا کجایی سلام خسته نماشی راحت باش کسی خونه نیست بده من بده من. بده من کسی نیست لا. چی چیکار کردی چشم بازارو کور کردی چه خبره تنهایی آره دختره رو بردم خونه فایقه با دخترهای جوون فائقه همسن و همزبونم این وقت شب چجوری برمیگرده جایی رو نمیشنسه قرار شب اونجا بخوابه بابا امانت مردمه باز از همه جا مطمئنتر خونه اوناست از همه جا از پسرش چی اون که پادگانه آقا ابراهیم ناراحت حرکت میکنه و به طرف اتاقش میگه آقا ابراهیم تو اتاقش همینجور نشسته و رفته تو فکر زن یه سفره شام دو نفره چیده و یه زرش پلو خوش رنگم درست کرده گذشته تو سفر. زن میشینه لبه تخت اتاق آقای ابراهیم مرد مشغول کوپ کردن ساعتشه قضا یخ کرد پس چرا نمیای؟ میلم نمی کشه تو که زخمه اصلا داشتی یه لحظه قضا دیر میشد شد سرسدارا را زور که نمیتونم. حالا بیا یکم بخور خانم خلاصم او سله میگم یادت همیشه حسرت دختر داشتی؟ خوب چی؟ یادت سر امیر چقدر لباس دختر خریده بودی اومده اینجا که همینو بگی انگار خدا این دختر بر ما فرستاده. خیلی به عرفت فکر کردم این که گفتی وقتی بیاد میدمش به یه مرد جوان خوب کدوم جوانی میاد باید زنبی رو عروسی کنه اون هنوز عروسی نکرده یعنی چی؟ یعنی نیست؟ ماه دیگه قرار بود عقدش کنن حالا چی کار میکنی؟ ایشکار میتونم بکنم تو که تا دیروز میگفتی تهرون پر مرد عذبه؟ تو هم که تا دیروز میگفتی شهر پر آدم لا و بی ایمونه. جوش که فقط سوت و كف میزنند وای به حال بقیه حالا من یادم آدم خوب تو این همه فسخ و فجور از کجا پیدا کنم زن با عصبانیت به مرد نگاه میکنه و از چشم بلند میشه و میره آقا ابراهیم بد جوری رفته تو فکر زن رفته نون خریده و اومده رادیو رم روشن میکنه شادیش باید که باشیم شاد شداد زمان نخواهیم دار آقای ابراهیم پنجری اتاقشو بازی میکنه و میگه یه خورده کمش کن پس چرا برزش نمی کنیم. حال ندارم بدنم کنفته هست انگار چایی بد جوری هم زن جوون نو تخت حیات نشسته کنار دخترهای فائق خانون یکی از دخترها مشغول درس کنند اون یکی و زن جوونم مشغول خوردن سلام. و سر فائق خانم با لباس سربازی و یه ساک میاد تو حیات به زن جوان نگاه میکن. سلام مادر سلام مادر دو بخش نباشی خیلی زن چادر رو میکشه سرش آقا ابراهیم تو اتاقش روی یه موب دراز به دراز افتاده زنش با یه سینی غذا به طرفش میاد زن سینی رو میذاره رو میز بشقا سوپو سوپ برمیداره زن دستی به سر و صورتش کشیده اینقدر گفتی از جوونا سرم که خودت خودتو چش زدی چیزیم نیست یکی دو روز استراحت کنم خوب میشه. دو روز؟ مگه تا به نوبه گرفتی؟ بلند شو بلند شو هرچی به خوابی بدتره من پاشو برات سوپ آوردم میلم نمیتونم پاشو تو گربه بخور برای توبه پاشو تو کار دیگه ای نداری. چطور مگه؟ خوب میگم این جلساتت کهریزک و خیریه و این کارا که میکردی یه وقت رو زمین نمونه از ثبابش بمونی خب بالاخره هر کاری توی سال یه هفته مرخصی داره خیلی عوض شدی رزمان حرفای تازهی ازت میشنه پس نمیدونی خودت چقدر عوض شدی آقا ابراهیم از زن رو میگردونه تو حیات خونی فائق خانم همه مشغول نهار خوردنن پسر فائق خانم کمی دورتر از مادر و خواهرش و زن جوون نشسته و زن جوان یواشکی به همدیگه نگاه میکنن پسر داره زیر شیر آب توی حوز انگور یاقوتی میشوره و میشین میره طرف زن جوون و یه خوش انگور بهش میده فائقه توی حیات داره لباس رو بند آویزون میکنه در باز میکنه زن آقا ابراهیم میبینه که زن جوون و پسر سلام. جوون فائقه نزدیک هم نشستن و دران انگور میخورن بچه چه زود با هم میشن بهتره امروز خندید چیه؟ حالت خوش نیست؟ زن آقا ابراهیم میشینه لبه ترخی میاد کنارش میشینه زن آقای ابراهیم دستشو میذاره رو چشم و پیشونیش ندم ببینم ساعت سیقش کی تمام میشه ساعت شیش دادم خوندن بعد از ساعت شیش بیارش بهتی محسود بیاردش حاجوها چی میگی؟ فعلا که زد زیر قولش یعنی چی؟ نه نمیدونم تو اصلا حالت خوش نیست من برم برات یه شربت بیارم آقا ابراهیم تو کوچه داره را میره از دور زن جوان و چادر به سر میبینه که همراه پسر جوان فائق خانم کسا که دختر رو دست گرفته و مشغول خوشو بشن به طرف خونه اونا میان آقا ابراهیم میاد خونه در حیات رو باز میکنه زنشون میبینه تو حیات نشسته و داره وسایل بسته بنده میکنه سلام سلام بیا بگو نامحرم هست با ناراحتی نگاهی بزن میکنه و از پله ها بالا بیره دختره برگشته خودم گفتم بیارنش اون که نامحرم نیست شب چهار رومه وقتی سیقه تموم شده سه روزه خونده بودم آقا ابراهیم زنش و زن جبان سر سفره بشستن نه میل ندارم چرا؟ چرا که قربه سبزی دوست داشتید؟ میخواییم چیز دیگه برکن درست کنن؟ زن آقا ابراهیم داره پلو میکشه تو باشقابا بسطه؟ نه نه نمیخوایم بخوریم ببین خوشمزه هست بخور بخور سالت بریز زن دوگ میریزه داخل یه لیوان زن اومده اتاق آقای ابراهیم لامپ اتاق روشن میکنه آقای ابراهیم رو موب دراز شده زن میشینه لبه یه تخت خود. چی شده هیچی اما من دو کلون بات حرف بزنم این وقت شب خب پس کی؟ فرمین زن بولن میشی طرف آقای رحیم. بیا بشین اینجا نه همینجا خوبه حرفتو بزن آه. میگم بهتر یه فکر برای این دختره بکنیم بلاخره تو خونه نمهرمه تو معذبی من نمیدونم خودت یه کاریش میکنم تو چته؟ چرا هر وقت میخوام باید حرف بزنم خودتو به خواب میزنی نکنه از حرف زدن با من بیزاری بابا این وسط من سر پیازه په پیازه. تو خودت به زور آوردیش اینجا حالا میخوای به زور از این خونه بندازیش بیرون خب میگی من چیکار کنم؟ تو گفتی میخوای شوهرش بدی خب بده دیگه تهرون پر از گرگه. خور از آدم بی ایمون. تو این زمونه فسق و فجور اینا که حرفای منه جواب خود تو چیه تو به من قول دادی زادی زیر قولت بابا چه قولی این چیزی بود که خودت خواستی من فقط گفتم یه لقمه نون داشت باشه یه سر بنا. یه جونی زیر بانوپرشو بگیری؟ من ایچ نشده از چشت افتادم وقتی نگوش میکنی راز کرد میشکوبد. نگاهی این روزاتو، حتی دوره چپونیتام نداشت. وقتی اصرار میکردی، حتما دستشو بزاری تو دستم. باید فکری این روزها رو میکردم. بعد میفهمیدی وقتی یه زن میاد تو این خونه یه زن میاد زن گریه کنان بلند میشه و میره آقا ابراهیم سرشو با دستاش میگیره زن آقا ابراهیم اومده توی اتاق زن جوون اون با قیز پارچه و نخاصوزن و وسایل گلدوزی رو از دست دختر میگیره پاشو بخواه پاشو بخوا. بده به من بریزمتو. از روی تخی پتو و بالش می کف اتاق آقای ابراهیم توی اتاقش رو تخت دراز میکششه توی اتاق دختر جوان رو تخت دراز میکشه وزن آقا ابراهیم کف اتاق سرشو میزره رو بالش و پتو رو میکشی روشو تصبیش رو میگیره دستشو پشتش رو میکنه به دختر آقا ابراهیم رفته تو فکر نصف شبه زن جوون رو تخت خوابه زن آقا ابراهیم کف اتاق خوابش بوده آقا ابراهیم از خواب پا میشه عباب دوش یواش یواش از اتاقش که طبقی والاست میاد طرف پایین میسته دم اتاق زن جوون در اتاق باز میکنه میبینه زن جوون و همسرش خوابند آقای ابراهیم با وحشت از خواب بیدار شده بله او همه اینا رو تو خواب دیده بود حالا واقعا از تختش میاد پایین. او واقعا بیدار شده و داره از پلاها میاد طبقه پایین. از در ساختمون میره بیرون تو حیات میره طرف حض. در پاییاشو در میاره با لباس میشینه وسط حوز آقا ابراهیم تو مغازه فرش فروشی گوشی تلفن دستشه داره شماره میگیره تلفن خونه آقا ابراهیم زنگ میخوره آقا ابراهیم شماره خونه خودشو گرفته بفرمایید ولی با خانومش شرف نمیزنه الو بفرماییم گوشی رو میذاره زن آقا ابراهیم هم گوشی رو میذاره شب شده زن آقا ابراهیم پریشان و ناراحت داره تو حیات را میره زن جوون از پشت پنجره به حیات نگاه میکنه زن آقا ابراهیم با قذب به دختر نگاهی میندازه دختر ناراحت از پشت پنجره میره زن آقا ابراهیم اومد تو ساختمون تو راه رو به زن جوان برمیخوره دلدل میکنه چیزی بهش بگه زن جوون سرش پایینه زن آقا ابراهیم تصویح و میچرخونه و را میفته نگرانه گوشی تلفنو برمی برمیداره شماره میگیری آقا ابراهیم توی پارک خلوتی داره قدم میزنه. خسته و نراحت میشینه روی یه نیمکت زن آقا ابراهیم تو خونه گوشی تلفن همینجوری دستشه زن آقا ابراهیم چادر رو پوشیده اومده دم در حیات و سر میکشه تو کوچه برمیگردی تو حیات منتظر نشسته رو پله ها خسته پامیشه میره طرف در ساخته شدی. آقا ابراهیم توی مغاز است گوشی تلفن رو برمیداری شدی ملکه عذاب هم خودتو انداختی تو ملکه هم منو بابا نمیتونم میترسم تا اون زن نامهرم تو اون خونه هست میترسم پا بذارم اونجا برای همین میگم زودتر تکلیفش روشن عشن چه تکلیفی؟ تکلیفش معلومه فکر میکنم همونی که روز اول به زور ازم خواستی خیلی هم بیراه نبود همونی که عقدش کنم ستایی زندگی کنی. زن شوکه شده باش نفسش بند اومده مبارکه عشقش داره در بسقرا عروسی رو بزار بعد از چلو عزادار خوبیدار گوشی رو میذاره با غضب برمیگرده و به زن جوون نگاه میکنه خشم و درد و عصبانیت از صورتش میباره تو اتاق نشیمن آقا ابراهیم و همسرش به پشتی تکیه دادند و روی یه پتو نشستن یه ظرف هندونی قاچ شده و چند تا جلو دستشونه زن جوون با چادر سفیدی که سرشه با سینی چای میاد تو بشین زن جوون به آقای ابراهیم نگاه میکنه خب شناس که شنیدم زیر آوار مونده حالا اگر وکالت می‌دی یه سیغه محرمیت بخونیم تا بعد از اینکه برات شناسنامه گرفتیم محضریش کنیم اصلا ازش بپرس راضیه رضایت دختر شرطه وگرنه عقد باطل شما راضی هستی محرم بشیم بله ازن ولی چی اجازه پدر لازمه بیوی نیست که با یه بله حل بشه این که پدرش مرده جدش پدر جدش بلاخره ولیش باید اجازه بده بابا تمام فکر و فامیلای این مردن رفتن ولی از کجا بیاره زن آقا ابراهیم داره یه پارچه رو با سوزن میدوزه باید از مدعی عموم یه نامه بگیرم اون اجازه بده کافیه سوزن رفت تو دستش اخ. زن جوون و آقا ابراهیم به اون نگاه میکنه اسمش چیه؟ مارال. مارال. پس مارال اسم این زن جوونه آقا ابراهیم با رضایت و لبخند به مارال نگاه میکنه مارال سرشو مندازه پایین اینجا حیات خونهی فائق خانومه. پسر جوون فائق غمگین نشسته تو در یکی از اتاقای خونه. فائق مشغول پاک کردن برنجه. نگاه معنی داری به پسر میندازه زن آقا ابراهیم و مارال اومدند یه پارچه فروشی. فروشنده یه پسر جوونه. او به مورال زل زده آقا ابراهیم با یه آقایی بیرون مغازه استادن تا حالای بودم نهیده بودن ماشاءالله خیلی بزرگ شدن میگم اگر موافقت بفرمید بعد محضر بفرستم برای مقدمات خالی غلامی بسرن والا هنوز قصد ازدواج ندارم خب با اجازه شما میکنم آقا ابراهیم با شرم دست میکشه به پیشانی اشاره میکنه به مارال و زن اونا از مغازه میان بیرون آقا ابراهیم و زنش و مارال دوره یه سفره نشستن شما بشین باید کار دارم زن میشینه و مارال از اتاق میره بیرون چشم تن نظار بده بیرون هیچ قریب ایرم تو خونه رانده. کدوم غریبه چه میدونم همین مسعودو میگه خونه فائق هم دیگه نفسش اش به گروهشو بگیره نه میتونه. اینا ایلیاتی هم همینجوری سرلوخ تو که کمر میدونم از چطور از من رو میگیره نمیفهمم تازه فائقه یه چیزایی هم میگفت مثلا چی؟ گناهش کردن اونا که میگن شون به کردی بگو ببینم چیه وقتی زلزله میشه همه اهالی دهشون میمیرن اینو نامزدی زنده میمونن با تا بچه کوچیک این دوتا سه روز باهم بودن روز سوم پسر پسرتو جاده تصادف میکنه چرا اینا رو به من میگی میخوای دل چرکی کنی بابا مانا سلامتی مسلمونیم ها اگه تو این سه روز اتفاقی افتاده باشه خب باید اده نگه داره عروسی میفته چهار ماه دیگه حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم به فائقه بگو هم ازش بپرس ببینه جریان چی بوده هرچی آتیش از گور اون فائقه بلند میشه دیگه به چشم خودم هم اعتماد ندارم میگم به بهجت بگم بیاد چطوره بهجت خانم. بهجت قابله قابله امیر و امین وا سو وقتی کیو می‌کنی فقط به چت میتونه بگه چی اومده بو الان تو حیات خونی آقای ابراهیمه حاجی که اومد دنبالم گفتم حکما و سروسا اومدین خوشحالم که بالاخره یکی از این جوانای قلتی فرنگی ما نسبت به ما خاطر جمع شدن و نرفتن تو این بیمارستان لکنتی زیر دست این دکترایی که هیچ چی نمی‌دونن خیلی خوش اومدی من بعد چیکار کنم مارال کنار حوز نشسته و داره دوره گلدونو تمیز میکنه. بهشت اومده تو سر مارال میزنه روشونه میگه دست مارالو میگیره میبره تو ساختمون مارال حیرت کرده زن آقا ابراهیم نگران میشینه رو پله ها بهچت از پله ها میاد پایین بسقری کرده چی شد؟ من که چیزی دستگیره نشد کاری نداری شما بیا من میخوام بیا بیا بیا یه چایی چیزی بخور دیوانه شدی والا از این چیزا زیاده خودتون زیاد ناراحت نکن بالا تو نوبری. با دست خود خواه به سر ادرختی حالان دیر نشده اصلا میخوای یه جوری بگم که از که چشمم وحی بیافتین من نمیتونم دروغ بگم دروغ مسئله تا بهتر از تا حرف درسته گناه داره وای وای همین مش رو میبینی فرد که چیکمش اومد بالا اینقدر زبون در میاری یه تیپا بهت می مینازت پیرو اسمش چکه یادی نمیاه بهش کاریش کن دیوونهش کن بعدم خیلی راحت انداخیش دیگه نخونه حامی ماهی پیش میخواستم این بیبی شربونو یه سر بینی بونه نه اینا باد بزنم از اون زن مقور مردم دار با کمال وای وای وای حالا ببین چی شد؟ یه پوسه استخور دیوونه خلچه چه راه دور میری؟ هفو با من چیکار کار کرد؟ منتبا من زبلتر از اون بودم رو دستش بلند شدم نهانی چقدر فرستادم میشرفت؟ حالا اینم بسپرش به دست من تو خیالت راحت باشه؟ من میدونم چی کنم شب شده ماران نشسته تو اتاقو داره عشق میریزه آقا ابراهیم با یه جعبه شیرنی و چند تکیسه پر پار از میوه از تو حیاط به طرف ساختمون میاد کناره و دم پله ها میسته مرال کجایی دختر مرال سلام سلام مرال کیسه ها رو از اون میگیره نمیدونستم مرال یه امروز از زبونت پرسیده خود نیست بهت میگم آخه مارال چشمه قشنگی نیست چشمه آهو داره و علیکم از پله ها میرم بالا آقا ابراهیم کنار حوز دستشو میشوره مارال حوله به دست کنار حوز ایستاده. آقا ابراهیم حوله رو میگیره و دستشو خوش میکنه حوله رو میده به مارال مارال به طرف ساختمون میره آقا ابراهیم میره طرف تخت گوشه حیاط حیات که زنش اونجا مشغول خیاتیه میشینه لبه تخت زن مشغول خیاطی میشه زنگ زد حجره گفت غروب میاد چیکار داره؟ یه چیزایی میخواست بهت بگه چیه میخواد بگه آبستانه؟ من نمیدونم خودش باید بهت بگه آقا ابراهیم تو مغازه است کتش رو در میاره میشینه پشت میز همکارش میاد تو مغازه. ببینم حاجی اینطور برم ریخته باشی آدم این زاده دیگه بیالی و بعدوالی هم بیخر ریششه و هیچ کاریش نمیشه کرد امشب ساعت هفت جلسه هیئت امنای تیم است یادت نره چاش ماجی. خدا حافظ خدا حافظ آقا ابراهیم گوشی رو خدا. با نراحتی گوشی رو میذاره سر جاش سرش میگیره تو دستش شب شده مارال کنار حوز توی حیات نشسته قمگینه در حیات باز میشه آقا ابراهیم یاد تو سلام جواب سلام نمیده و با ناراحتی از کنار مرال میگذره و میره مرال تعجب میکنه آقا ابراهیم اومد تو سخته زنش چادر نماز به سر رو سجاده نشسته و داره نماز میکنه سلام نیکن. آقا ابراهیم میشینه لبه یه تخت توی اتاق چیکارش کارش کنیم این دختره رو میفرستیمش بره همتون راحت میشی زن چادر آمد. به سر و ساک به دست اومدی تو اتاق مارا پاشو بریم چادرتی سر کن بریم سرت کن بریم مارال چادرشون میپوشه. زود باش. زن ساکو میده به مارال. بگیر. راه میافتند. از جلو آقای ابراهیم رد میشن. آقای ابراهیم نگاهی به اونا میندازه. امگین پامیشی میشی میره طرف پنجره و حیات و رفتن اونا نگاه میکنه. زن و مرال تو کوچه به طرف خونه فائقه میرن زنگ در خونه فائقه رو میزنند زن می به بدر کسی در رو باز نمیکنه؟ ببینید تو جا باش اینا جا باشن الان پیداشون میشه مارال عمگین رو بغز کرده میمونه پشت در خونی فائقه حالا نصف شبه مارال سات به دست راه افتاده تو خیابون آقا ابراهیم تو اتاقش بیدار و بیتاب نشسته مارال تو خیابون بیکس و تنها داره راه میره مارال تو پیاده روی یه خیابون خلوت میشینه روی نیمکت. ماشین میاد نگه میداره دو تا مرد جوون از ماشین پیاده میشن میرن طرف مارال مارال وحشت کردی کیف و ساکا از مارال میگیرن و چادورش رو از سرش میکشن صبح شده مارال با ای به هم لخته و ناراحت داره میره طرف خونه فائقه زنگ در رو میزنه سرش به دیوار تکی میده صورتش خیلی مریض و بیحاله مادر مادر بیا فائقه اومده دم در خونه آقا ابراهیم ندرست چی شده؟ ردش کن بگه؟ یک کنی چه رفتی جبالایی سرش آمده نمیدونم مگه مارال خونه نیست؟ پسر جوون فائقه داره رو با آب حوز میشوده از لب حوز پا میشه میره طرف قفس مرقه اشقا از پنجره اتاق میبینه مارال تو رخت خواب دراز کشیده و فائقه داره به زور بهش غذا میده پسر امکین از پشت پنجره میره کنار زن آقای ابراهیم ناراحت داره تو حیات راه میره آقای ابراهیم پنجره رو باز میکنه به حیاط نگاه میکنه زن همینطوری داره راه میره ابراهیم ابراهیم چه چیکار زن و مرال میرن توی اتاق خانم خان دکتر خانم دکتر و خوهراتون با همراهشون اومدن میخوان شما رو ببینیم بسیار خواهر راه نمیشون گرد چشم بفهم بسرام خواهر سلام علیکم بیتجا. بح بح خیلی خیلی خوش اومدیم بفرمیم چه عجب خواهر دفعه اولی که اینجا میایی میگفتی میدادیم گل بارون کنم خجالت هم ندی ریحانه البته میتونم حت بزنم کمک به زلزله زده ها صدقه خیرات ببین این رسیده کمک 150 من به صندوق مسجد برای این کارا اینجا نایمدم پس چی؟ بیجاد خانم که برای معاینه و مدابا اجازه نمیده این برای بیای مریضی؟ نه من نه زن میره طرف خانم دکتر رو تو گوشش پش پش میکنه مارال حراسانه باشه بسیخ تو بیرون منتظر باشه زن درو باز میکنه میاد بیرون میشینین رو سندنی امگینو و پشیمانه مارال از اتاق معاینه میاد بیرون زن میره داخل خان دکتر در اون میبنده مارال صورتی به هم ریخته و مستره بیواره برای زن خ... خوهر. خوهر این دختر از لحاظ جسمی هیچ مشکلی نداره بکر رو دست نخورده است اما از نظر روحی و عاطفی مریضه یه مریض واقعی من نمیخوام کنجگاوی کنم اما با این بیچاره چیکار کردید تو تو هم دوشتی ریانه کاش بازم نیسته بچه گیا به من میگفتی ریحان. تو تنها کس من هر وقت هر کمکی لازم داشتی در خدمت زن سرشو میذاره تو سینه رو گریه میکنه زن و مارال تو ماشین نشستن ماشین در حال حرکتی راحت نه؟ بله مارال روشو از زن برمیگردونه طرف خیابون مارال به زن نگاه نمیکنه. مارال قمگینه زن از پشیمانی چشماش پر عشقه مارال از ماشین پیاده میشه به طرف خونه فائقه میره زن به رفتن قریبانی اون نگاه میکنه شبه. زن آقای ابراهیم پریشان و بیخواب با صورت هم دیخته نشسته توی تخت به کندی از تخت میاد پایین میره طرف اتاقی که مال مارال بود با وحشت به جای خالی اون نگاه میکنه هر آسان از اتاق دور میشه میره جلو آینه دم در. به خودش نگاه میکنه دست میکشی به صورتش با وحشت میده طرف حوز شروع میکنه به شستن دست و صورتش آقا ابراهیم میاد بیرون رو پله میشینه زن نادم و پشیمان عشق میریزه آقا ابراهیم متعجب به زن نگاه میکنه چی شده این وقت شب دست به شده. واسه کدوم گناه طلب ااف می کنی واسه اینکه پدری رو حسرت به دل دیدن بچش کردی واسه اینکه اون همه بد غقیار رو عمر از کنارش گذاشتم یا به خاطر اون دختر که پاش تو زندگی من تو خونهی من باز کرد سی کدوم یکی. خودت از پاک دست ایچ بردی بهش نخوردی. بیچاره به دور. دور گفته. و چرا؟ میرم بیارمش بیاریش؟ من اگه جای تو بودم همین الان میزدم به کوه و بیابون تا نمیشنیدم خود خدا بخشیدتم بر نمیگشتم بر نمیخواستم بیگه ببینمت زن قمگین حلقشو از انگشتش بیرون میاره و میذاره لبه ی حوز به سختی پا میشه و میره آقا ابراهیم تو کوچه است داری میره طرف خونی فائقه فائقه در رو باز میکنه سلام بگو نرال بیاد مرال مریضه بردنش دکتر شما تشریف ببرین من خودم میارمش مارال از پشت پنجره به دمه در نگاه بکنه اونا عاشق تو هم دست تو دست چه این مصیبت تو سرم آورده روز اول قبل از اینکه بیارمش رزوان به هم گفت میخواین در حقش سباب کنین دختره کباب کردین و فرستادینش پس بایده کافر مسلمون میکنین من بازن جماعت دهن به دهن نمیشم برو بگو بیاد فائقه میره آقا ابراهیم دم در قدم میزنه پسر فائقه با کیسه دارو که دستشه میاد طرفی خونه شون با کار داری؟ او را از مادر بپرس پسر میره تو حیات آقای برین داره گوش میکنم روی لا هر لنبا من نمیزارم ببریش میگم نورش نمیزارم ببریش مگه نمیگم نورش کجا میبریش خستم من حوصلی درد سر ندارم برو که دار فاقه دست مارالو که حالا چادر سرش گرفته و میره دم در مارال از دم در سرشو بر میگردونه و به پسر فاقه نگاه میکنه و میره فائقه در رو میبنده پسر فاقه قمگین سرشو تکه میده به دیوار حیات تو کوچه مارال کنار آقا ابراهیم راه افتاده و در حال رفتنن رسیدن خونی آقا ابراهیم بروز. مارال میاد تو آقا ابراهیم در رو میبنده مارال پشت سر آقا ابراهیم به راه میافته مارال پاین پله ها یا بیا مرال. من محرمت هم بیا بالا حالا مارال از پله ها میاد بالا ولی بروش سخت به سختی میره توی اتاق بیا تو مارال چادرش رو از سرش در میره بس دیگه مارال انگش نمای کوچه و بازارم کردی خدا خوبی تو میخوام. سی چی کمت نمیذارم تو اومدی تو این خونه برام زندگی آوردی با تو هم دختر گوش میکنی شما گوش کنین حاجا خواه روزی که اومدم گفتن میخوای برام پدری کنی سایتون رو سرم باشه تن میخوایی دستم بذارین تو دست یه جوان بی سرفانه خودم نگاهتون مهربون بود دوستتون داشتم اما یهو فهمیدم اون نگاه ها پر حوثه حالا رو ازم گرفت که از خونه پیرونم کردی حالا از من چی میخوای؟ تنم ابراهیم ناراحت و پشیمان از اتاق میره بیرون مارال همینطوری داره گریه میکنه آقا ابراهیم اومده کنار حوز حلقه زنش و لبه حوز میبینه اونو بر میداره. مارال از پشت پنجره به حیات نگاه میکنه آقا ابراهیم از لبه حوز پا میشی برمیگرده طرف ساختمون مارالو پشت پنجره میبینه آقا ابراهیم به حلقه نگاه میکنه با سرعت به طرف در حیات میره. آقا ابراهیم اومده زیارتگاه. آقا ابراهیم دکمه آیفون خونه رو فشار میده. بله. منم ابراهیم. بفهموی. میره تو. ریحان خواهر یا همون خانم دکتر؟ کیف به دست توی حیاط به طرف ماشینی میره. در ماشین رو باز می‌کنه. رو میذاره تو ماشین. بهبه ابراهیم خان سلام علیکم. سلام علیکم. هیلیا خوش اومدی. کفش اینجا تسلا. درس یاد نکنه حالا تو این چه آدم راست. حالا کجاست؟ همین جاست. بفرمایید در ماشین. باشیم. بفرمایید. اونا به طرف ساختمون را میافتن رزوان خوشحال از پشت پنجره به اومدن اونا نگاه میکنه بعد زود میره قمگین میشینه روی یه مابل نه بابا این چرفیه خونه خودتونه خب و باز هم اشاق قدیمی و هم رسیدن با اجازه شما ما باید خودمونو برسونیم سر کاسبیمون یه زاوی جبون منتظره که ما در خرج منو ببخش. ولی امیدوارم شب که برمیگردم شما رو دیگه اینجا نبینم امیدوارم منظورم رو بفهم من هیچ جا نمیرم طاله ناز میکنه من خودم میبرمش. خدا پشت و پناهتون خود بفهم مستخدم سویچ میده بخانم دکتر آقای ابراهیم میره نزدیک رزوان میشینه رزوان با خوشحالی به آقای ابراهیم نگاه میکنه اقا ابراهیم حلقه رو از جیب کتش بیرون میاره و میده به رسوان حالنا بخشیدی من امتحان خدا رو راحت گرفته بودم ولی هر دومون تو امتحان رد شدیم هیچ وقت برای جبران دیر نیست؟ پاشو بریم سر خونه زندگیت؟ <laughs> که خواه هم جوابت کرد اون شوخی کرد ولی تو جدی جوابم کردی اون شب من عصبانی بودم تو جای خود تو توی دل من میدونی دران مارال مراسم عروسی تو حیات آقا ابراهیم برقراره ریسه های لامپ های رنگی میزا صندلی آقا ابراهیم میاد طرف داخل ساختمون نگاه میکنه به مارالو پسر فائقی که سر سفری عقد نشستن یه نگاه هم به رزوان میندازی که داره کل میکشه رزوان متوجه میشه و بلافاصله دنبالش را میفته آقا ابراهیم میره طرف زیر زمین میشینه رو لبهه تخت رزوانم هم میاد همونجا.